کتاب افثانه های جادوگری به نویسندگی آقای محمد شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افثانهی سوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی گوینده حمید رزا شاندور. خدا و با سلام خدمت شما یاران همیشه دید. با سری داستان‌های افسانه‌های جادوگری در خدمتتون هستیم و امیدوارم که در داستان‌های این کتاب هم با من هم سفر و همراه باشید تا های زیبایی رو بشنویم با هم. این داستان پسر نانی در رستایی پیرزنی با تنها پسرش زندگی میکرد. تمام دلخوشی اون فقط همین یه دونه پسر بود. پسر قلب و مهربون بود و کارش پوشکشی بود. پوشکشی برای حیوانات که جوال میکرد و به این و اون میفروخت. روزی از روزها که پوش جمع کرده بود خاص جوال پوشش رو کول بگیره زورش نرسید. با خودش گفت شاید از روی حواظ پرتی چند تا سنگ قاطیه پوش کردن جوالو دوباره خالی کرد اما جز پوش چیزی توش نبود دوباره پوش ها رو جمع کرد توی جوال ریخت و خاص کول بگیره دید بازم سنگینه بود زورش نمیرسه سردر نی بود ناامید روی جوال نشست و نگاه به مقابل دوخت و قدری دورتر چشمه بود مردی رو دید که لبه چشمه نشسته پا شد و به طرف چشمه راه افتاد و مرد چیزهایی روی کاغذ می نوشت و بعد کاغذ رو به چشمه مینداخت داخت پسر زن رسید و پرسید چی کاریی؟ گفت تقدیر نویس پسر گفت پس تقدیر من رو بنویس گفت نوشتم گفت چی نوشتی؟ مرد جواب داد، تو در مغرب زندگی میکنی اما دختر سلطان مشرق زمین مال توست. پسر ننفیر زن خندش گرفت و گفت، مزقرم میکنیم؟ من کجا با دختر سلطان مشرق زمین کجا؟ من از دار دنیا به غیر از یک مادر پیر چیزی ندارم. ادامه داد، دست از تقدیر نمیسی بردار. حالا پشو. برای رضای خدا هم که شده کمکم کن تا این جوال سنگین رو روی کولم بذارم تقدیر نویس جواب داد اونچه چه گفتم پاداشه کارهای خوب توه میخوای باور کن میخوای باور نکن پسر ننه پیرزن به جوال نگاه کرد و دید گاوی اون رو شاخمال میکنه با عجله به طرف گاو دید اما هرچی هایهو کرد به گاو بترسه و بره فایده ای نداشت و هرچی نهیب زد دید نه فایده ای نداره یه دفعه چشم گاو به اون افتاد و به طرفش حمله کرد و اون رو با شاخش از جا کند پسر نن پیرزن بین دو چله شاخ گاو گیر افتاد و از شدت ترس جیره کشید و بیهوش به زمین افتاد پس از مدتی که به و برشون نگاه کرد نه از گاف خبر بود و نه از جوال پوش و نه از تقدیر نویس اثر و نیشونی نبود به جای اون یه دورنمای شهر و بزرگ رو میدید و که خیلی هم زیبا بود داخل شهر شد و به گردش پرداخت، مدتی که این طرف و اون طرف شهر رو گشت خسته شد در این شهر سلطانی حکمرانی میکرد که دختر بسیار زیبایی داشت از امیرزاده های لشگر گرفته تا اشرفزاده های کشوری همه خاستگارش بودند. در جمع خاستگاران این دختر پسر وزیر بیشتر از دیگران مورد توجه سلطان بود اون مایل بود دخترش دخترشو به وزیر بده با اینکه اطرافیان سلطان در گوشش میخوندن پسر وزیر نه خوشقد و قامته و نه صاحب جمال و کمال و لیاقت دختری به این زیبایی رو نداره. اون به وزیر جواب مثبت داده بود و از اون خواست تا سر روز دیگه بسات عروسی رو فرهنگ کنه. وزیر از اینکه پسرش داماده سلطان می خوشحال بود اما حرفهای اطرافیان سلطان رو هم شنیده بود و وحشت داشت که مبادا دختر سلطان پسر زشت و ویلی اون رو قبول نکنه پس به فکر چاره افتاد از غذا چشمش دقیق و قامته کشیده پسر ننه پیرزن افتاد که در اون لحظه قرشنگی و تشنگی رنگ به چهرش نگذاشته بود پیش اون رفت و پرسید چیکار ای پسر ننه جواب داد قریبم و بیکه از گرسنه و تشنه وزیر بهش گفت یک شبانه روز تو رو عجیل میکنم که در اختیار من باشی و در مقابلش به تو صد تومان میدم اون وقت از چشم کو رو از گوش کرو، از دهان لال و از دست و پا شل میشی. شطور دیدی ندیدی پسر نانی پیروزان قبول کرد وزیر اون رو به قصر خودش برد پسر نانی پیروزان از دیدن ساختمون های زیبا و مروونچه‌ی سرسبز کاخ و اتاق‌های پر از قالی و آینه‌کاری حیرت زده شده بود چون توی عمرش همچین جایی رو ندیده بود وزیر میخواست پسر نانی پیرزن رو به جای پسر خودش که از هیکلش اگه صد تا ارزن بریختی یکیشم پایین نمی جاه بزنه تا محبول دختر سلطان واقع بشه و بعد در شب عروسی پسرشو عوض پسر ننی پیرزن روونه خونه عروس کنه وزیر موضوع عروسی رو با پسر ننی پیرزن در میون گذاشته اون رو با شاباش و ساز و دوحل به همون فرستاد. وقتی شب شد به پسر ننی پیرزن گفت تو رو امشب برای پسند میفرستم نزد دختر سلطان پشت در اتاق دختر کیچیک چی میذارم؟ اگر دست اصفا خطا کنی زبونتو از پس کلت بیرون میکشم آراسته برو آهسته برگرد پسر ننی پیرزن قبول کرد شبانه رخت و لباس پسر وزیر رو به پسر ننی پیرزن پوشوندن و اون رو به کاخ سلطان بردند ملکه به استقبال اومد و به که این همون پسر وزیره به اون خوش آمد گفت و بعد راهش راهشو کشید و رفت. پسر ننی رو به سوی اتاق دختر سلطان هدایت کردند. از بس که نمای اتاقها و راه راه های کاخ زیبا بود، اون جا به جا خوش کش می زد. نگاه میکرد و قادر نبود جلوی حیرت خودش خودشو بگیره. تا اینکه یکی از ندیمه اون رو به اتاق دختر سلطان برد. دختر سلطان، پشت پرده خودش رو پنهان کرده بود و قصلونیتش این بود که اگر پسر وزیر رو پسندید از پس پرده بیرون بیاد وگرنه از همونجا اون رو برونه. پسر در گوشه اتاق نشست و منتظر دختر سلطان شد قافل از اینکه دختر سلطان اون رو از پس پرده زیر نگاه خودش گرفته بود. در همون نگاه اول یک دل نه ص دل خاطرخواه اون شده دختر سلطان از پس پرده بیرون اومد و در کنارش نشست اما پسر ننه پیرزن از ترس کیشیکچیا خودش رو عقب کشید و صورتش رو به طرف دیگه کرد دختر سلطان گفت شما اگر خواهان ازدواج با من نبودین پس چرا اومدید چرا خودتون رو بی‌توجه نشون میدین پسر ننه پیرزن از ترس وزیر حرفش رو خورد و دم نزد و در برابر اصرار دختر که چرا چیزی نمیگی فقط گفت قرار ما شب عروسی دختر سلطان قبول کرد و به نشانه پسند یک روسری توری به اون داد پسر پیرزن از جا برخواست و همین که به بیرون قصر رسید همون گاو رو در برابر خودش دید گاو به اون حمله ور شد و با دو چله شاخشون رو بلند کرد و به زمین زد پسر از هوش رفت مدتی گذشت تا پسر ننفیر زن به هوش اومد کنارش همون جوال پوش رو دید دستی به لباسش کشید فهمید لباس خودش نیست مال وزیر داده است توی دستش هم روسری رو دید و مالید و با خودش گفت خدایا خوابم بی دارم اگه بیدارم این لباس عیون زده ها و این روسری زنونه چیه و اگر خوابم پس این جوال پوش چیه اونگاه روبرویش رو نگاه کرد خونه های آشنای آبادی خودش دید برخاست و راه آبادی رو در پیش گرفت در حال رفتن به خودش گفت اگر من با این سراب از بده مردم به من میگن یا کسی رو کشتی یا جایی رو زدی و دزدی کردی اگر نه این رخت و لباس عیونی رو از کجا بردی اما حالا بشنوید از حال و روز ننه پیرزن ننه پیرزن که از غیبت پسرش نگران شده بود و برنگشته بود این برا آبادی و اون برا آبادی رو همه یه همسایه ها رو جنگل و کوه و کتل و هر جایی رو سر زد اما پسرش رو پیدا نکرده بود شب تا روز روز تا شب کارش فقط گریه و, زاری و هی دعا و نظر رو نیاز میکرد که یکی یه دونه پسرش پیدا بشه اما نشد جستجوی جوی کت خدا و اهالی آبادی هم به جایی نرسیده بود و حالا پس از اون همه خونه دل خوردن نمیدونست که یکی یه دونه پسرش با پای خودش به سوی خونه میاد پسر ننفیرزن وقتی به خودش اندیشید که به صلاح نیست با اون اختقیافه وارد بشه راهش راهشو کت کرد و خودشو در شکاف درختی پنهون کرد تا هوا تاریک بشه و شبانه به خونه بره شب شد و از شکاف درخت بیرون اومد و جوال خالی رو روی دوشش انداخت و یک به خونه رفت ننفیر زن از دیدن پسرش که صحیح و سالم پیدا شده بود بسیار خوشحال شد و کشماش از شادی برق میزد اما همین که چشمش به لباس افتاد با ناراحتی پرسید آدم کشتی دزدی کردی؟ اینا را کجا آوردی پسر ماجران رو که به سرش اومده بود از سیر تا پیاز برای مادرش تعریف کرد و بعد لباس عیونی رو در آورد و با روسری که دختر سلطان به اون داده بود در بخچه پیچید و توی صندوق آهنی کهنه گذاشت و درب صندوق رو غرف کرد از فردای اون شب باز با همون قیافه سابقش به پوشکشی پردست از اون طرف وزیر از گم شدن پسر ننی که اون رو به جای پسرش غالب کرده بود دوچار شگفتی شده بود و دستور داده بود وجب به وجب شهر رو از پاشنه در بیارند ولی هر هرچی شهر رو زیر رو کردن کچی رد پای از اون پسر پیدا نکردن از توی دیگه قرار بر این بود که اون شب شب عروسی باشه و وزیر که از عاقبت کار میترسید و نگران بود که رازش باش بشه نمیدونه چیکار کنه. بالاخره فکری کرد. ادهی از امیران و لشکران و کشوری رو به دربار فرستاد تا اون دختر سلطان رو به کاخ پسرش بیارن اما دختر سلطان زیر بار نرفت و گفت من شاهزاده هستم. باید پسر وزیر به کاخ من بیاد. وزیر وقتی این جواب رو شنید از یافتن پسر نن که ناامید شده بود به ناچار پسرش رو به هنمام دامادی فرستاد و لباس پر زراغ و برقی تنش کرد و اون رو پاسی از شب رفته به کافه شاهزاده روانه کرد. دختر سلطان مثل دفعه قبلی خودش رو پس پرده اتاق پنهون کرده بود و همین که پسر وزیر وارد اتاق شد فاصله فهمید. که این پسر برگیافا و بیقباره اون خاصگار قبلی نیست پس عصبانی شد و نهی زد و گفت زود برگرد به همون جایی که بودی پسر وزیر به فرمان شاهزاده اقل, اقل رفت و سرفگنده و مقمون به کاخ خودش برگشت وزیر که با دل منتظر بود وقتی پسرش رو دمق دید بدون اینکه که به روی خودش بیاره به اون گفت ای فرزند عزیز چرا تنها برگشتی؟ پس عروس هم کو پسر گفت شاهزاده منو از قصر خودش بیرون کرد وزیر فوراً برای سلطان نامه نوشت که ای قبل عالم عالم تصدیق کردم شاهزاده خانم که دفعه اول پسرم رو پسندیده ولی امشب که شب عروسیه اون رو به دامادی قبول نداره و از کاخش بیرون کرده از طرف دیگه دخترم به پدرش نامه نوشت که ای پدر تو منو میخوای به چند نفر شوهر هر دفعه قبل کسی دیگه اومده اومد بود و امشب کسی دیگه ای. به این ترتیب ازدواج شاهزاده با پسر وزیر هم به هم خورد مدت زیادی از این ماجرا گذشت در این مدت دختر سلطان که خاطرخواه پسر نانی پیرزن شده بود از قم دوریش روز به روز لاغرتر و رنجورتر میشد و دائم چشم انتظار بود سلطان هم از وضع دخترش که حال و هوای خوبی نداشت نگران بود دختر با امید پیدا شدن پسر نامهی به پدرش نوشت و از اون خواست که پسر رو پیدا کنه سلطان جواب داد من که اون رو ندیدم و نمیدونم چه شکل و گیافهی داره چه کاری از دستم برمیاد دختر که چنین جوابی را از سلطان دریافت کرده بود از پدرش خواست که چند قاطر چند کیسه پر از دو و صد سکه طلا و چندین تن از سپاهیان محرم و رازدار رو در اختیارش بذاره تا خودش به دنبال پسر بره و پیداش کنه سلطان خاصه دختر رو برآورده کرد و او هم لباس سپاهی پوشید و برای یافتن دلدادش کاروان کوچیکش رو راه انداخت و شهر به شهر رفتند و به هر شهر که میرسیدن سپاهیان جار میزدن که هر کسی سرگذشت خودش بگه دو قران پول میگیره دختر سرگذشت ها شنید ولی مطلوب خودش رو نیافت اون و کارمان کوچیکش خسته شده بودند و دیگه میخواستن به شهر خودشون برگردند که در سر راه به آبادی پسر نن پیرزن رسیدن دختر سلطان گفت ما که این همه شهر و دیار رو دیدیم بعد نیست به این آبادی هم سری بزنیم به میدان چه آبادی رفتند و جارچی جار, جار زد پسر ننی پیرزن در اون موقع جوال پوش روی کولش گرفته بود و به میدانچه ده رسیده بود. جار رو شنید و پس از فروش پوش به خونه اومد. جوال رو به مادرش داد و گفت میخوام برم. ننی پیرزن پرسید کجا میخوای بری ننه؟ پسر موضوع جار زدن رو تعریف کرد. مادرش ناراحت شد و گفت عاقبت کار دست خودت میدی نرو؟ برای دو قرون پول نر رو سرگذشتت رو پیش قریبه ها نگو اما پسر حرف مادر پیرش رو گوش نکرد و به میدون چه ده رفت. دختر سلطان با لباس سپاهی توی چادر نشسته بود و پسر نری پیرزن با لباس پوشکشی داخل چادر شد و از دختر سلطان پرسید شما چی میخواستید؟ اون گفت هر کسی سرگذشتش رو بگه دو قرون میگیره. پسر ننه پیرزن بنا کرد به تعریف کردن سرگذشت خودشو ماجرای وزیر و دختر سلطان. دختر سلطان گفت: میتونید لباس دامادی و روسری توری رو نشون بدید؟ پسر ننه پیرزن جواب داد: چرا نتونم؟ بیایید خونه ما تا از صندوق ننم در بیارم و نشونت بدم. دختر سلطان غیر از دو قرون چند تا سکه هم به اون داد و گفت برو خونه و تدارک شام ببین که ما امشب مهمون تو هستیم پسر ننی فیرزان قبول کرد و نشانی خانه رو داد و به خانه برگشت سکه ها را به مادرش داد و گفت ننه امشب مهمون داریم سفره شام رو مهیا کن ننی با همون دو قرون مفصلی تدارک دید و دختر سلطان با کاروان کوچکش به خونه ننه پیرزن اومد پیش پیش پسر ننه پیرزن در صندوق آهنی کهنه رو باز کرد و بخچه لباس رو درآورد و به محض اینکه که مهمان ها وارد شدن پسر ننه پیرزن دختر را شناخت و با تعجب گفت ننه این مهمان همون دختر سلطانه نگفتم خواب ندیدم نگفتم دیده بودم نگفتم اینم بیداری دختر سلطان گفت بالاخره تو رو پیدا کردم همونی که میخواستن صبح شد و کاروان دختر سلطان در حالی که پسر نن و نن را همراهی همراه خودشون داشتن راهی شهر سلطان مشتق زمین شدند. به این ترتیب همونطوری که تغییر نویس نوشته بود پسر نن با دختر سلطان مشتق زمین عروسی کرد و زندگی شیرین رو با هم آغاز کردند. بله دوستان عزیز و همراه و همسفر من این هم از قسطه پسر ننی پیرزن امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و در داستانهای بعدی از های جادوگری با من همراه و همسفر باشید برای شما دوستان همراه و همسفر آرزوی سلامتی و بهروزی دارم و همه شما عزیزانم رو تا داستان دیگه از افسانه های جادوگری به خداوند بزرگ میسپارم و بهترین ها رو براتون آرزو می کنم مراقب خوبی های خودتون باشید خدا یار و نگهدار همه شما کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me slash مهران دوستی t.me نقط m-e-h نشانی وبلاگ ما M -e